دوستان خیلی خوشحالم از اینکه به ما در دانشکده کوچک کتاب مقدس ملحق شدید. از شما ممنونم که دانش وفادار و با ایمان کتاب مقدس مهمترین کتاب در جهان بودید. بررسی ما حالا به جدید و نامه های رسول رسیده. امروز ما نتیجیگیری مطالعه نامه دوم پولوس رسول به کلیسای قرنتیان را انجام میدیم. در کنار عیسی مسیح خداوند در درس یاد گرفتیم که پولس بزرگترین مبلغ مسیحی وائز و معلمیه که تا به حال در دنیا وجود داشته پولس میتونست مغرور باشه ولی خدا کاری انجام داد تا پولس مغرور نباشه اگه میخواد بدونید کاری که خدا در زندگی پولس کرد و چرا خدا این اجازه رو داد باید به معلممون ملحق بشیم از خدا می‌خوام که چشمان روحانی شما رو باز کنه تا حقیقت کلام اون رو بفهمید و اون رو در قلب و زندگی خودتون انجام بدید. در این کلاس ما به پایان بررسی نامه دوم پولوس به قرنتیان می رسیم. در این مطالعه ما صحبت های پولوس درباره تجربه آسمانی خودش رو گوش میدیم. پولوس تجربه ای رو میگه که در راه دمشق براش اتفاق افتاده، تجربه ای که در بیابان عربستان داشته و تجربه آسمان سوم پولوس. تجربهش رو اینطور می نویسه. 14 سال پیش به آسمان سوم رو بوده شدم نمیدانم با بدن به آسمان رفتم یا بیرون از بدن خدا میداند و میدانم که به فردوس بالا برده شدم با بدن یا بیرون از بدن خدا میدونه و چیزهای وسط ن شنیدم که سخن گفتن از آنها بر انسان جایز نیست درباره خود جز به ضعف فخر نخواهم کرد حتی اگر نخواهم فخر کنم بیفهم نخواهم بود زیرا حقیقت را بیان میکنم اما از این کار میپریزم تا کسی مرا چیزی بیش از آن نپندارد که در من میبیند و از من میشنود اما برای اینکه عظمت بی این مکاشفات مغرورم نسازد خاری در جسمم به من داده شد یعنی عامل شیطان تا آزارم دهد و مرا از غرور باز دارد سه بار از خداوند تمنا کردم آن را از من برگیرد اما مرا گفت فیض من تو را کافی است زیرا قدرت من در زعف به کمال میرسد. رسد پس با شادی هرچه بیشتر به زعفهایم فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح در من ساکن شود از همین رو در زعفها، دشنامها، سختیها، آزارها و مشکلات به خاطر مسیح شادمانم زیرا وقتی ناتوانم، انگاه توانایم وقتی نامه های پولوس و داستان زندگی او و خدمتش در کتاب اعمال رسولان را بررسی میکردیم. بارها گفتم که نمیتونید این مرد رو جدای از تجربیاتش توضیح بدید. پولس در جاده دمشق تجربهی کسب میکنه. پولس میگه که این تجربه او قبل از اینه که پادشاهان، فرماندهان، رهبران مذهبی و عرازل اوباش به خانو او رو بکشن. پولس مکررن میگه من تجربه‌ای داشتم. من در راه سوریه بودم تا مسیحیان رو بکشم. اینجا بود که در جاده دمشق ایسای مسیح رو ملاقات کردم. تجربه ملاقات با مسیح تمام زندگی منو دگرگون کرد. شما نمیتونید زندگی منو بدون درک کردن این تجربه تبدیل شدن بفهمید. وقتی ما وارد کتاب بعدی میشیم، کتاب قلاتیان، ما در باب اول تجربه دیگری از پولس رو خواهیم دید که به این تجربه بیابان عربستان میگیم. پولس ادعا میکنه که بعد از اینکه تبدیل شدن رو در راه دمشق تجربه میکنه، قبل از اینکه با دیگر شاگردان به اورشلیم بره، به بیابان عربستان برده میشه. پولس ادعا میکنه که در بیابان عربستان مسیح قیام کرده با او ملاقات میکنه و او رو تبدیل به شاگرد خودش میکنه. پولس به غلاتیان میگه، پولس به میگه که این اتفاق چهارده سال بعد از تجربه راه دمشق او صورت گرفته و میگه وقتی که او با شاگردان در اورشلیم بود، با پتروس و یعقوب برادر خداوند ما ملاقات میکنه. بعد از اینکه عیسی از مردگان قیام میکنه، او در ظاهری مبدل خودش رو به پتروس و برادر خودش یعقوب نشون میده. اونها کسانی هستند که پولس میخواد با اونها دیدار کنه، کسانی که به طور جداگانه مسیح قیام کرده رو بعد از رستاخیزش میبینن. پولس در باب اول غلاطیان به ما میگه که در بیابان عربستان مسیح او رو تبدیل به یک رسول برای غیر یهودیان میکنه. همونطور که پولس میگه اعتبار شاگردی لزوما به این نیست که کسی از تعمید ایسای مسیح تا زمان سعودش با آسمان با او بوده باشه. گرچه معمولا اعتقاد بر اینه. پولس میگه چیزی که باعث تبدیل شما به شاگرد میشه اینه که شما توسط ایسای مسیح تبدیل به شاگرد بشی و پولس ادعا میکنه که این اتفاق براش افتاده، پولس تجربه تبدیل در راه دمشق و تجربه بیابان عربستان رو داره. پولس ادعا میکنه که او سه سال با عیسی بوده همونطور که بقیه شاگردان بودن. به قول پولس مسیح قیام کرده به پولس تعلیم داده که او در شاهکار الهیاتی و شبانی خودش مثل رومیان اول و دوم قرنتیان قلاتیان و بقیه رسالاتش به ما چی بگه پولس تجربه خیلی مهم داشت اگه شما میخواین پولس رو درک کنید باید این تجربه های او رو درک کنید پولس تجربه آسمانی هم داره پولس در مورد تجربه آسمانیش در باب دوازدهم از دوم قرنتیان به ما میگه من یک بار بهش رو دیدم. من به آسمان سوم امره بوده شدم. خیلی چیزها در مورد تجربه آسمانی پولوس وجود داره که اون نمیتونه به ما بگه و خیلی چیزها در این مورد وجود داره که خود پولس هم نمیتونه اونا رو بفهمه. به طور مثال فقط خدا میدونه که پولس با بدن جسمانی به آسمان رفته یا بدون بدن جسمانی. من شیفته این قسمت در دوم قرنتیان هستم. این تجربه ی میتونه در زمانی که در لستره سنگسار شد اتفاق افتاده باشه. بعضی ها اعتقاد داشتن که اون مرده و وقتی در اونجا سنگسار شد به آسمان سوم رو بوده شد. پولوس میگه وقتی که او به آسمان سوم رو بوده شد او چیزهای آسمانی رو تجربه کرده که نمیتونه با کس دیگه ای در میون بذاره. این همیشه منو مجذوب میکنه چون مادر من هم که زنی مذهبی بود به خاطر خبازات کسی مرد مردنش چهار سال طول کشید وقتی که سرانجام مرگش رسید کسانی که در کنارش بودند به او حسودی میکردند هیچ کس برای او ناراحت نبود چون او از قبل در آسمان بود و با پولس نویسنده این قسمت صحبت میکرد او حتما از اینکه که در پدیدههای واضح نشدنی بود شگف زده بود چون ظاهرا او داشت تجربیاتی رو کسب میکرد. اما همیشه می نمی نمیتونم به شما چیزی در موردش بگم پولس گفت من نمیتونم به شما در مورد آسمان چیزی بگم من اجازه ندارم در مورد اون چیزها صحبتی بکنم پولس هیچ وقت از این تجربه تبدیل فراتر نرفت تجربه راه دمشق زندگی او رو تبدیل کرد او قبل از اینکه تجربه راه دمشق رو کسب کنه بزرگترین رهبر ضد مسیحی منطقه بود اما همونطور که نتایج تجربهش به ما نشون میده او تبدیل به بزرگترین خادم، بزرگترین شبان، بزرگترین معلم و بزرگترین نویسنده کلیسای مسیحیت شد. پولس برای مسیح توسط مسیح و در مسیح زندگی کرد. پولس از تجربه بیابان عربستان فراتر نمیره. به عنوان یک عالم دینی، به عنوان یک محقق، به عنوان متفکری در روزگار خودش، او باید با نو شدن ذهن خودش تبدیل میشد. او سه سال رو در بیابان عربستان سپری میکنه و هرگز از تجربهش فراتر نمیره. این دلیلیه که چرا رسالات او الهام گرفته است و توسط حقایق الهام گرفته یه امیرین نوشته شده. پولس هیچ وقت از تجربه آسمانی خودش فراتر نمیره. از زمانی که او به آسمان سوم بوده میشه همیشه یه پاشتوی آسمان بوده. من فکر میکنم این نظم فوقالعاده خدا رو نشون میده که یکی از پاهای پولس رو روی زمین نگه داشته. پولس خودش به ما میگه که او با این تنش زندگی میکرد. این میل قوی که از زمین جدا بشه و با مسیح در بهشت زندگی کنه. او در باب اول از نامه خودش به افسوسیان به ما میگه که بریدن از این دنیا برای او خیلی بهتره. او به فیلیپیان میگه به این دلیل که اونها به او نیاز دارن، او میخواد که در این دنیا زندگی کنه. وقتی که پولس رساله خودش به افسوسیان رو می نویسه، موضوع او اینه، در مکانهای آسمانی. او به افسوسیان و به ما میگه متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را در مسیح به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی مبارک ساخته است چیزی که او میگه اینه بهشت تنها یک مکان نیست که شما بعد از مرگ به اونجا برید بهشت یک حالته بهشت یک بوده شما همین الان هم میتونید در این بود زندگی کنید او افسوسیان و ما رو تشویق میکنه که در جایهای آسمانی زندگی کنید عیسی این رو در باب سوم انجیل یوحنا که با یک عالم یهودی یعنی نیقدیموس صحبت میکنه به ما نشون میده عیسی به نیقدیموس در مورد تولد دوباره میگه و نیقدیموس میپرسه چطور عیسی میگه تو معلم اسرائیلی و این چیزها رو در نمییابی آمین آمین به تو میگویم که ما از آنچه میدانیم سخن میگوییم و بر آنچه ایم شهادت میدهیم اما شما شهادتمان را نمیپذیرید اگر هنگامی که درباره امور زمینی با شما سخن گفتم باور نکردید، چگونه باور خواهید کرد اگر از امور آسمانی به شما بگویم؟ هیچ کس به با آسمان بالا نرفته مگر آن که از آسمان فرود آمد، یعنی پسر انسان که در آسمان است. نیکودیموس فقط نگفت چطور، او حتی عیسی رو درک نکرد. فکر میکنم که اون بیشتر از فهم و درک او بود. اما حقایقی که بر پولس گذشت در حد فهم و عقل پولوس بود پولوس تجربه آسمانی داشت و در بقیه عمر خودش تلاش کرد که به ما بگه ای کسانی که روی زمین زندگی می کنید. شما بر روی زمین زندگی می کنید و شاید شما در دسته قرانتیان زندگی کنید شما میتونید یه پاتون توی بهشت باشه میتونید همین الان هم در جایهای آسمانی زندگی کنید من یه لوهی رو دیدم که روش اینطور نوشته شده بود وقتی که در دسته بوغلم زندگی می کنید خیلی سخته که بخواهید با یک اقاب اوج بگیرید پولس با بوغلم در قرنتس بود ولی مثل یک اقاب اوج می گرفت چون همیشه یه پای پولس توی بهشت بود در نامه دوم قرنتیان پولوس مثل بقیه نامهاش با ما صحبت می کنه و این بار در مورد برتری خادم صحبت می کنه. یک خادم ایمانداران رو آشتی میده و این ایمانداران کسانی هستند که تبدیل به خادم مصالحه یا صلح و آشتی میشن. صدای پای خادم صلح و آشتی با صدای تبلوکرنا فرق داره. اونها نباید مثل دیگران در جهان باشن. در واقع پولوس در این نامه به ما میگه که زیر یوغ نابرابر بی ایمانان نروید چون نور با تاریکی جور در نمیاد. این تمام تفاوت بین ایمانداران و بی ایمانان در جهانه. این چیزیه که هست. چه چیزی تفاوتی جاد میکنه؟ تفاوت اینه خادم شاگرد عیسی شاگرد صلح عیسای مسیح یه پاشتوی بهشته مسیح رو تبدیل کرده. او دستور داره که برای مسیح شفاف باشه و مسیح رو به مردم نشون بده او یه پاشتوی بهشته و به طور مداوم در بودی از آسمان زندگی میکنه در این قسمت پولس میگه اما برای اینکه عظمت بیاندازهٔ این مکاشفات مغرورم نسازد خاری در جسمم به من داده شد یعنی عامل شیطان تا آزارم دهد و مرا از غرور باز دارد شاید این خار در بدن یه مریضی جسمی باشه پولس میگه که این خار عاملی از شیطانه پولس میگه که این خار در بدن یه سری اهداف داره پولس نصفی از عهد جدید رو نوشته تا مکاشفات خودش رو با ما در میون بذاره بهش فکر کنید اگه شما و عهد جدید رو نوشته باشید و مکاشفات و تجربیات پولس رو داشته باشید آیا دوچار غرور روحانی نمیشید؟ پس پولس میگه که این خار باعث میشه تا او رو همیشه فروتن بسازه پولس بزرگترین مبلغ و بزرگترین معلم بود پولس خدمت شفا هم داشت پولس نه تنها بیماران رو شفا داده بود بلکه مرده را زنده کرده بود پولس خودش مریض بود و سه بار به نزد خدا رفت و دعا کرد خدایا لطفا این مریضی رو از من بردار پولوس میدونست که درخواست درستی داره ولی جواب این بود نه، نه، نه هر زمان که پولوس درخواست میکرد این جواب رو میگرفت جواب خدا اینه فیض من تو را کافی است زیرا قدرت من در ضعف به کمال میرسد به عبارتی خدا به این مرد میگه من تو رو میشناسم من میدونم که تو یه انسانی میدونم که اگه یه روزی اجازه بدم تو کاملا خوب بشی و قدرت بگیری تو تمام قدرتت رو به کار میگیری و به روش خودت کار میکنی. بعد یه روز صدای منو میشنوی که بهت میگم این کار من نبود. این کار تو بود. در این نامه ها، مخصوصا در غلاتیان و رومیان، پولس در مورد زندگی در جسم و زندگی در روح نوشته. زندگی کردن و گام برداشتن و بودن در جسم یا در روح. در جسم یعنی کارها رو به روش خودتون انجام میدید. این خواست خودتونه. در کتاب مقدس کلمه جسم یعنی طبیعت انسانی بدون کمک خدا. کار در جسم موفقیت خودتونه، پس کار خودتونه. پولس میگه این چیزیه که شما نباید بخواین، چیزی که شما باید انجام بدین اینه که در روح زندگی کنید و در روح سماری بیارید که ماندنی و ابدیه. این سمراته که باقی میمونه. حالا پولس برای اینکه در روح بمونه و نه در جسم خدا اجازه میده که مریض بشه. ما نمیدونیم که مریضی او چیه؟ میدونیم که مشکلی در چشم و دیدش داره. شاید زخم‌هایی در چشمش بوده. پولس در غلاطیان چیزی رو می‌نویسه که غلاطیان با دیدن مریضی پولس حالشون به هم می‌خوره. پولس به غلاطیان میگه من شهادت شما رو قبول دارم که وقتی که پیش شما بودم اگر می‌توانستید چشمانتون رو در می آوردید و به من می‌دادید. وقتی که غلاطیان به چشم‌های پولس نگاه می‌کردن حالشون بد می‌شد. پولس غالبا عنوان میکنه که ضعیفه. من بالاخره بعد از مطالعه بسیار در این سالها به این نتیجه رسیدم که پولس احتمالاً اسکلروز چندگانه داشته یا چند بیماری که باعث خستگی مزمن او میشدن. اسکلروز چندگانه باعث میشه که شما خیلی خیلی ضعیف بشید و حتی روی بیناییتون هم تأثیر میذاره. چیزی که مسلمه اینه که خدا به پولس میگه فیض من تو را کافی است زیرا قدرت من در ضعف به کمال میرسد. پس با شادی هرچه بیشتر به زعف هایم فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح بر من ساکن شود. چیزی که مسلمه اینه که خدا به پولس میگه فیض من تو را کافی است زیرا قدرت من در زعف به کمال میرسد. و او میگه پس با شادی هرچه بیشتر به زعف هایم فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح بر من ساکن شود. من میخوام شما رو تشویق کنم تا بدونید که قدرت خدا در انسانهای ضعیف بهتر نمایان میشه. اگه شما یکی از این انسان هستید که هر روز به خاطر خستگی مزمن رنج می کشید، از روح القدس بخواهید که به شما بگه که منظور پولوس از این که میگه وقتی ناتوان آنگاه ناتوانمانگاه توانایم چیه؟ بعد دعا کنید که خدا از ضعف شما به عنوان وسیله استفاده کنه تا قدرت خودش رو به جهان نشون بده. اگه شما قدرتمند و سالمید، از خدا بخواهید که به شما نشون بده که فرق قدم زدن با روح القدس با قدم زدن به وسیله قدرت خودتون یا همون قدرت انسانی که با سلاح خدا تجهیز نشده چه فرقی داره میخوام که همه ما یاد بگیریم چطور با قدرت رستاخیز مسیح در زندگی هامون عمل کنیم میخوام که تجربه دیک وودوارد رو به شما بگم نویسنده دانشکده کوچک کتاب مقدس که در همه جای جهان به بیشتر زبانها شنیده میشه کسی که تجربه مریضی و خستگی مزمن داره که شاید خیلی شبیه وضعیت فیزیکی پولوس باشه. دکتر الیزابت کوبلر در کتاب خودش به اسم در مورد مرگ و مردن به ما میگه چه اتفاقی در برخورد با اینجور چیزها مثل مرگ غم و اینجور بیماری ها رخ میده. او خیلی عاقلانه به ما میگه که در مقابله با این مشکلات پنج مرحله صورت میگیره. اول اونها رو انکار میکنیم ازشون عصبانی میشیم ازشون دل زده میشیم و سپس باهاشون چونه میزنیم اما در نهایت مرحله پذیرشه آرامش از طریق پذیرفتن به دست میاد وقتی به شبانودوار در کلینیک مایو گفته شد که او خستگی مزمن داره اولش انکار کرد او بین 8 تا 13 کیلومتر در روز میدوید او خیلی راحت نمیتونست این واقعیت رو بپذیره که نباید بدوه. چون محدودیت جسمی داره او تجربه خیلی وحشتناکی رو پشت سر میگذاشت چون او مرحله انکار رو تجربه می میکرد یه بار او میخواست چیزی رو از فروشگاه بخره و خانومش همراه او نبود او به تنهایی به مرکز خرید رفت و از این فروشگاه به اون فروشگاه میرفت تا بتونه چیزی رو که میخواد پیدا کنه او خیلی راه رفت اونقدر راه رفته بود که نمیتونست پیش ماشینش برگرده چهل متر مونده به ماشینش او روی چمنها میفته و مردم فکر میکنند او مسته او به راحتی نمیتونست از جاش بلند بشه او همونجا لم داد و مقداری استراحت کرد در آخر داخل ماشینش رفت و نمیتونست رانندگی کنه چون پاهاش خیلی ضعیف شده بود. او یه پاش رو بلند کرد و روی کلاچ گذاشت و یه پاش رو هم روی ترمز. او به خدا قول داد اگه بتونه امروز با ماشین به خونه برگرده دیگه کار احمقانه ای مثل این رو انجام نمیده. این یه انکار ساده بود. او محدودیت فیزیکی خودش رو انکار کرده بود. وقتی که او تصمیم گرفت که انکار کردن این موضوع رو کنار بذاره، او وارد مرحله دوم شد. مرحله عصبانیت. او به مدت چهار ماه میخواست با صدای بلند فریاد بزنه و به در و دیوار مشت بکوبه. او فکر می کرد که یه شبان خوب ریزنقش با چشمهای قهوهی نباید این فکر را داشته باشه ولی واقعا داشت. بعد از عصبانیت افسردگی اومد. خادم خدا میتونه دپرس بشه. مزامیر رو بخونید. نویسنده مزامیر اکثر مواقع افسرده است. نویسنده مزامیر به شما نشون میده که چه کاری باید انجام بدید و اما او افسردگی رو تجربه کرد و بعد وارد مرحله بعدی و چون زنی شد. اما در نهایت پذیرش اومد، پذیرشی مثل اون که برای پولوس اومده بود. او میدونست که چیزهایی وجود داره که خدا میخواد و انجام بده. به جز بقیه چیزها خدا میخواد خودش در این دوره وارد عمل بشه. ببینید خدا 20 سال سعی کرد و او بفهمونه که باید این دوره مطالعه کتاب مقدس رو شروع کنه اما این زمانی عملی شد که، خدا به او محدودیتی داد و در نهایت او از خدا اطاعت کرد. خدا کار درستی میکنه که به زندگی های ما نگاه میکنه و میگه من می خوام چیزای مطلق از زندگی شما و خدمتتون جدا بشه. اگه شما کاملا شفا گرفته باشید دیگه اونها رو انجام نمیدید. پس من شما رو ضعیف میکنم. خدا این کار رو برای دیک بود وارد انجام داد و این در مورد پولس هم صدق میکنه که خدا باعث ضعفش بوده. حالا من این اصول رو در زندگی خودم به کار میگیرم و مطمئنم که شما میخواین این آموزههای کتاب مقدسی رو توی زندگی خودتون عملی کنید. در حال حاضر ما نامه دوم قرنتیان رو بررسی میکنیم. باب دوازدهم از دوم قرنتیان پولس به ما چیزی میگه که در زندگی او میاد و نتیجهش خاریه که در جسم تجربه میکنه. لطفا به این جملات پولس گوش کنید. اکنون من پولس به خاطر و ملایمت مسیح شخصا از شما درخواست می کنم. آری همان پولس که به گفته بعضی از شما پیش روی شما فروتن و ملایم ولی دور از شما گستاخ هستم از شما التماس می کنم که مرا مجبور نسازید وقتی با شما هستم با گستاخی با شما رفتار کنم چون تصمیم گرفتم در مقابل آنها که گمان می کنند ما با انگیزه های دنیاوی عمل می کنیم گستاخ باشم مسلما ما در این دنیا به سر می بریم. اما جنگی که می‌کنیم دنیوی و جسمانی نیست. اسلحه جنگ ما سلاح‌های معمولی نیستند، بلکه از طرف خدا قدرت دارند دژها رو منهدم کنند. ما هر نوع سفسته و هر مانعی که در مقابل معرفت خدا قرار بگیره از بین میبریم و تمام افکار و خیالات را تحت فرمان مسیح در درمی‌آوریم. وقتی اطاعت شما نسبت به ما کامل شود، آن وقت کسانی را که نافرمانی می‌کنند مجازات خواهیم کرد. و آنچه در جلو چشمان شما قرار دارد توجه کنید آیا کسی در میان شما مطمئن است که به مسیح تعلق دارد آن شخص باید بپذیرد که ما هم مثل او به مسیح متعلقیم شاید من درباره اختیاراتی که خدا به من داده است بیش از اندازه به خود بالیده باشم ولی پشیمان نیستم زیرا خدا این قدرت و اختیار را برای بنای شما به من داده است و نه برای خرابی شما فکر نکنید که میخواهم، با نامه های خود شما را بترسانم. شاید کسی بگوید نامه های او سخت و موثرند ولی حضور او بی اثر و بیانش تعریفی ندارد. این اشخاص خاطر جمع باشند که آنچه را از دور به وسیله نامه می نویسم هر وقت بیایم همان را عمل خواهم کرد. و تفاوتی در بین نخواهد بود. البته ما جرأت آن را نداریم خود را با کسانی که خود را انقدر بزرگ می مقایسه کنیم و یا در یک ساعت قرار دهیم وقتی آنها خود را با یکدیگر میسنجند و با همدیگر مقایسه می کنند نشان می دهند که چقدر احمقند و اما ما نمیتوانیم از آن حدی که برای ما تعیین شده بیشتر فخر کنیم یعنی به میزان خدمتی که خدا به ما سپرده است و آن شامل خدمت شما نیز می شود وقتی ادعا می کنیم که کلیسای شما هم در محدوده ماموریت ما قرار دارد از حد خود تجاوز نمی کنیم. زیرا ما اولین اشخاصی بودیم که انجیل مسیح را به شما رسانیدیم. ما از آنچه دیگران در خارج از محدوده مأموریت ما انجام دادهاند به خود نمیبالیم. بلکه امیدواریم که ایمان شما رشد کند و ما بتوانیم دامنه خدمت خود را وسیع‌تر سازیم تا سرانجام بتوانیم انجیل را در کشورهایی که در آن سوی سرزمین شماست اعلام نماییم و آن وقت لازم نیست که ما به کاری که قبلا در حوزه مأموریت شخصی دیگر انجام شده است فخر کنیم چنانکه کلام خدا میفرماید هر که بخواهد فخر کند به خداوند فخر نماید زیرا خودستایی شخص را در حضور خدا مقبول نمی سازد بلکه فقط وقتی خداوند از کسی تعریف نماید مورد پسند اوست این نقدی بود که قرنتیان به پولس کرده بودند اونها میگفتند خودتون رو واسه این نامه ها ناراحت نکنید ظاهرا خیلی عالیه ولی فقط سر و است وقتی خودش به اینجا بیاد میبینید که چیز بزرگی در مورد پولس وجود نداره و مطمئنم وقتی ببینیدش متوجه میشید که بدترین واعظ دنیاست این چیزی بود که اونها در مورد پولس در قرنتس میگفتند. پولس این نقد رو اینجوری جواب میده ما جرئت نمی کنیم که خود را در زمره کسانی بشماریم یا با کسانی قیاس کنیم که خود ستایند چه نابخردانه است که آنان در باره خویشتن با میزانهای خودشان قضاوت می کنند و خود را با خود میسنجند همونطور که پولوس بر علیه نقد قرنتیان که رسالت او رو زیر سوال میبردن از خودش دفاع می میکنه او به اونها و به ما اجازه میده که چیزی رو بدونید. وقتی که شما تجربه تبدیل شدن به خادم رو دارید سپس به برتری خادم می رسید و بعد متوجه میشید که شما میتونید در حقیقت پیش برید و خودتون رو در برد آسمانی پیدا کنید مثل ای که به درخت انگور وصله و میتونه از قدرت اون استفاده کنه. حالا شما یه انبار سلاح در اختیار دارید. اینجا پولوس از نظر جسمی ضعیفه و از ناتوانی رنج میبره و او میگه اگه به من نگاه کنید میبینید که من یک انسان معمولیم. ولی اجازه بدین به شما چیزی رو بگم. در زیر این سطحی که میبینید گنجی وجود داره که درون ظرف خاکی منه و به وسیله گنج مسیح من انبار اسلحه در اختیار دارم. توسط این اسلحه ها من میتوانم هر دیواری رو که شیطان در جلوی کار خدا درست کرده خراب کنم. من میتونم ببینم که سرکشانی که درست مثل شما هستند به سمت مسیح برمیگردند. من از انبار اصل هم بعد از اینکه علیه شما استفاده کردم علیه همه سرکشان استفاده میکنم. پولس با قرنتیان خیلی رک و مستقیم حرف میزنه. و به اونا میگه از این سلاح برای اونها هم استفاده میکنه چالشی که اینجا وجود داره اینه، آیا خبر دارید که شما انباری از سلاح روحانی در اختیار دارید؟ آیا میدونید که اصللحه دعا رو دارید و وقتی قدرت دعا رو تجربه کنید اصلهی روحانی دارید ؟ پولس در نامه خودش به افخصوصیان در مورد سلاح روحانی و زره با ما صحبت خواهد کرد تمام اینها تحت عنوان برتری خادم بحث خواهد شد این دیدگاهی حیاتی در خدمت هست که پولس برای ما ترسیم میکنه در رابطه با تلفیق فشار از بیرون و سرچشمه درون پولس به ما نشون میده که نه فقط استقامت خادم بلکه محبت خادم هم شرطه پولس در خیلی از موارد این کار رو انجام داده در یک مورد او به قرنتیان می نویسه قلب من برای شما گشوده است ولی این شمایید که مهر خود را از ما دریغ میکنید این بزرگترین بینش در ارتباطاته شما میتونید این رو توی خونتون و برای ازدواجتون عملی کنید. من یه بار از یه مشاور ازدواج مسیحی شنیدم که میگفت همه ی ما یه پنجره ی کوچه که ارتباطات توی قلبمون داریم. ما فرض میکنیم که قلب‌های ما روبروی همند و پنجره‌شون بازه. شاید اولش اینطور باشیم اما بعدش شریک ما میاد و میگه که چیزی او رو میرنجونه و پنجره قلبش رو میبنده به جای اینکه قلب‌های ما روبروی هم باشن و پنجره‌ها باز باشند. ما پشت به هم میکنیم و پنجره ها رو میبندیم وقتی پولس برای قرنتیان مینویسه قلب من برای شما بازه پنجره ارتباط من بر شما بازه این شمایید که قلبتون رو به روی من بستید قلبتون رو برای من باز کنید وقتی پولس برای قرنتیان مینویسه قلب من برای شما بازه پنجره ارتباط من بر شما بازه اما این شمایید که قلبتون رو به روی من بستید قلبتون رو برای من باز کنید شما محبتی رو می میبینید که پولس نسبت به اونها داره همونطور که پولس قلبش رو برای قرنتیان باز کرده او میگه زیرا با غم بسیار و دلی دردمن و چشمانی اشکبار به شما نوشتم نه تا اندوهگینتان سازم بلکه تا از عمق محبتم به خود آگاه شوید پولس یه قسمت عظیم در مورد توبه در این نامه به ما میده یادتونه که پولس در بحث نظم کلیسایی از قرنتیان در رابطه با مرد فاسد چی خواسته بود اونها به حرف پولس گوش داده بودند و اون مرد رو از کلیسا بیرون کرده بودند. همونطور که پولس این نامه رو می نویسه و اونها میگه اکنون دیگر باید او را ببخشید و دلداری دهید. مبادا اندوه بیش از حد را از پادر را برد. همونطور که پولس به راهنمایی در مورد این می پردازه به قرنتیان میگه که نوعی از غم وجود داره که توبه را به همراه داره. این نوع خیلی خوبه. و این میتونه کلی ثمرات داشته باشه. در این قسمت از نامه پولس نیمروخی از تجربه توبه که از خداست به ما نشون میده. در بابهای چهار و پنج دوم قرنتیان پولس در مورد انسان بیرونی و انسان درونی صحبت میکنه. تاکید پولس در این بخش از نامه زیبای او به برتری خادم و تبدیل شدن و شفافیت خودش بوده. وقتی پولس این نکتر را خاطر نشان میکنه، او چنین چیزی می‌نویسه: اینکه انسان بیرونی و انسان درونی وجود داره. انسان بیرونی مثل چادر و خیمه میمونه. در باب پنجم پولس تعلیم بزرگی به ما میده که تا باب پانزده ادامه پیدا میکنه. وقتی که او در مورد زندگی بعد از مرگ مینویسه به ما میگه که مرگ برای ایمانداران خیلی ساده است و مثل بالا زدن چادر یا خیمه است که همون انسان بیرونیه. پس انسان درونی میتونه بدون هیچ مانعی با مسیح باشه. کاملا بدون مانع انسان بیرونی پولوس یا آیه بزرگ در باب چهارم به ما میده که اون رو با کسانی که تجربه فلاکتی در زندگی دارن در میون بذاری من همیشه افرادی رو میبینم که سرطانشون خیلی بدخیمه همین الان دوست عزیزی دارم که در این وضعیته. من با خانومش این رو در میون گذاشتم که درست بدن جسمانی او شکسته میشه اما انسان درونی او الان میتونه فارق از هر غمی فارق و تحصیل بشه. این طریقیه که پولس رسول میگه انسان بیرونی نابود میشه ولی انسان درونی هر روز تازه و تازه میشه و برای دوران ابدی آماده میشه. پولس در اینجا مثل اول قرنتیان باب پانزده میگه روزی ما باید بدنهای جسمانیمون رو ترک کنیم. چیزی که پولوس به ما میگه خبر خوبیه. در این نامه پولس به ما میگه که انسان بیرونی رنج های بسیاری رو متحمل میشه زخم های بسیاری رو تحمل میکنه ولی این زخم ها باعث میشه به تدریج فشارهایی به ظرف سفالی کوچک ما وارد بشه و انسان بیرونی از بین میره اما انسان درونی هر روز تازه‌تر و تازه‌تر میشه تا به مرحله ابدی آماده بشه وقتی که شما نشانه های پیری رو تجربه میکنید مثل پولوس فکر کنید و ببینید که در دوم قرنتیان باب 4 آیه 16 چی گفته هرچند انسان ظاهری ما فرسوده می شود انسان باطنی روز به روز می میگردد پیری و مریضی چیزی که خدا قرار داده تا انسان درونی شما آماده ابدیت بشه و به تجربه آسمانی خودش برسه خلاصه باید بگیم پولس تجربه راه دمشق رو داره تجربه بیابان عربستان رو داره و تجربه آسمانی رو داره پولس از حد تجربیات خودش فراتر نمیره ما نباید از تجربیاتی که خدا به دیگران داده سو استفاده کنیم و بگیم ما همون تجربه ها رو داشتیم مخصوصا افرادی مثل پولس رسول با این حال ما باید بر روی اصول تعهد تمرکز کنیم که دیگران رو به تجربه با خدا فرا میخونه خب وقت ما تموم شده ولی قبل از اینکه شما رو ترک کنم میخوام چند چیز کوتاه بگم وقتی که ما این اصول تعهد رو توی زندگی خودمون عملی کنیم خدا ما رو وارد ای میکنه که برای ما در نظر گرفته با اون دیدگاه از تجربیات یاد من نمیدونم آیا شما تجربه تبدیل شدن رو دارید منظور من همون تجربه که پولست داشت نیست بلکه تجربه که خدا میخواد ما داشته باشیم. آیا شما تجربه مثل تجربه پولوس در بیابان عربستان رو دارید؟ آیا شما تجربه مثل تجربه پولست در آسمان دارید؟ آیا شما خاری در جسم خودتون دارید؟ آیا شما واقعا میخواین که خادم پرسمر و رو تأثیرگذار عیسی مسیح باشی بر اساس چالش‌های تجربیات پولس رسول شما باید به تجربه‌هایی که خدا براتون در نظر گرفته خوشامد آمد بگی به این دلیل که چنین تجربیاتی باعث میشه که شما خادم بودن خودتون رو اثبات کنید و تبدیل به خادم عیسی مسیح برای جلال خدا بشید دوستای خوبم معلم ما امروز چیزی رو به ما درس داد که باعث میشه دیدتون نسبت به ضعف عوض بشه اون گفت وقتی که کسی به صورت فیزیکی ضعیف دیده میشه کارهای بزرگی انجام میده. خدا تنها کسیه که جلال رو دریافت میکنه. خدای ما خدای فوق‌العاده ای که تنوع و تفاوت رو داره. کسی ای در دنیا وجود نداره که شکل شما باشه و تجربیات شما هم با دیگران فرق میکنه. این خیلی مهمه که یادتون باشه که جزئیات تجربیات شما مهم نیستن. مهم نتیجه اونهاست و اینکه باعث چه در زندگی شما میشن و به این دلیله که خدا اونها رو به ما میده. تجربیات شما با پولس رسول، من و دیگران فرق میکنه. برنامه‌تون رو طوری بچینید که در برنامه بعدی هم با ما باشید و از دیگران هم دعوت کنید تا به کلاس مطالعه رسالات پولوس بیان. از خدا میخوام که به شما توانایی و حکمتی ادا که شهادت کاری که خدا در زندگی شما کرده رو با دیگران درمیون بذارید. تا جلسه بعدی از خدا میخوام که به شما روح اتحاد که باعث پشتگرمی و پایداری میشه رو در بین شما به عنوان پیروه مسیح حکم فرما کنه. پس میخوام که یک دل و یک زبان جلال خدا و پدر خدای ما عیسی مسیح رو بطلبید